زین هار کنون که می توانی باری، بردار ز خاطر عزیزی باری، که مملکت حسن نماند جابی از دست تو هم برون رود یک باری. زان پیش که از جامع عجل مست شوی زیر لگد حادثه ها پست شوی سرمایه به دستار اینجا کنجا، سودی نکنی اگر توی دست شوی سازنده کار مرده زنده توی، دارنده این چرخ پراگنده توی، من گرچه بدم خاجه این بنده توی، کس را چه گنه آفریننده توی. ای باد ناب و ایمه می می مینایی، چندان بخورم تو را من شیدایی، که از دور مرا هر که ببیند گوید، ای خاج شراب از کجا میایی.